اندگان محترم در ادامه گزارش مقصری اصلی گرونی هندونه همکنون در مکانیکی ابراهماغا هستیم و در این لحظه میبینم که جاب دارن شدیدا با ابراهماغا گفتگو میکنن من امکن به فیش رفته شما هم نامزد ناندرو در جلویم نیست. ام قبول ندارم. یعنی چی چی قبول ندارم؟ حالو اتر بندر بذینی؟ آقای چی کامب شده؟ باز شما بله. نداری؟ یه دو بذی هست. با جنبینی؟ و جو دیگه، و جو سالنگ سالانگی دیگه. نبABA اون که شلگیه چی دیگه؟ آم میگی شما؟ چرا کار ماد خالد میکنی؟ دیگه کیشی بود نوبر وارلو. آقای عزیز شما نیم، تو نیساح کرد بشینی داده گه؟ هی واقعا هی من که دارم وقتمو با شما کلم ساکت باش شما گذارشه تا بگی باش می میگفتی ابرام آقا چرا نرخی مم. تعمیراتو کشیدی بالا چرا نه در جنب سرفم البته بند سر هنگم گلابی البته چی گفتی شما هیچ با میگم این لبازه میگده که جدیده همه چون گلابی شدن چینی همه آم میگفتی شما هم دیرو رفتی کپشن بوسونی خب توی ما باید دیدی یه دیدی می... چیز کنیم که سرم نخوریم. نخوریم برای ای کپشنو دیویست پنجای ازارت من پیاد شدم خب منم مجبورم بکشم رو نخ دست موز دارم ابرام جون خوب خریدی ها ولی من هفته پیش چار ست دادم برای یه دونه کپشن خلابانی اینه که رو بازیش جا خود کردی داره از اینه تفرمو شاهدم نمیخواد حالا شما از فرصت استفاده کنی. آقا آقاجو کاپشناتو از کجا خریدید شما؟ سمت میدان ولیعصر ورا دیگه. آخه خیلی خوب. از آقا ابشام رو در مارگی پاکوتا. سر انگی، گیریگی، بیشی دی بیچی متی نقریدی. من ولی دارم خردم. بذار من بگم. آقای عزیزی چه کاری هست؟ واسطه ماموریت شما انجام بده. عجب. از میکروفون طلب مرد پاکوتا. از میکروفون طلب مرد پاکوتا. ای پاکوتا خوی. اکثر ما اکثر کوی ببین من پاکوتا میای این ابلام مکانیکو دستپا میذنی میچینی هر که موتورت بعد میای دنبال ما دیگه شکن مار چر میخوای ببری بود کیو گرون فروخته عجب جیری افتادی ما بسریگا بسریگا چی پاکوتا چی یعنی چی جا نداری ها زلنگ میگی جا ندادم چی چی میگه بده من ببینم بده من بده چی چی میگوی گندی جا نداره <تصفح> میدونم نمیخواد مقررات داد من بدی با مرکز تماس بگی تقاضای ورنگ کن تمام خب آقای ابرام این آدرسی دقیقه این بوتیکی که کابشن خریدی رو بگو ببینه بین بوتیکی بله. نازی سیابونی ولی از بعد میدون اوبر سیمنما بری سیابونی ولی هست حال چه مار میخوایی ببری اوبر سینما بریم آقا نظر منو تو بیاد پایین با نازی خانوم، ای سر سر رنگ مملکت داد نازندگی با این. اشکالی گالی آقا، یکی از وظایفی پلیس ته حمل صبوری و بارباریه. شما دخلت نکن بی زما. یک دقیقہ واسه چه آدمی هستی سی و داشتم تو دفاع میکردم و خیلی سرم سرنگ. نمی‌خواد آقا، خودم میتونم از اون کار خودم بر بیام. خب میگفتی خواهرم شما کجا بودیم؟ شما گفتی نه، اه. گردن نمیگیره. مجبور بودیم. نه، گردن من نندازین. پاشا گفتم گوش بکنم قورمه سبزی قاصو به گوشت کلیسی 35000 تومان رو با 40 تومان حساب کرد. آخو. خب نمیشه که قورمه سبزی درست نکنیم. باز خار بزرگم قرار خواستگار بیاد مجبور بودیم. خب اینم بزرگت نره بخش تو همیشه جت... خودم میمونی. اه. اه پس شما ازدواج نکردین؟ نازی خان چه خوب ببینه نازی خانم من الان خودم بسکان آما خجالت. به چش بینور ببینم اینا چی چه میگی به ناموسی مردان. من چیزی نگفتم بگی. شما از الان میاره. بله می گفتی خواهرم مفهمم. خب وقت قاست بیاین جوری که ما مجبوریم همه چیو بیم بالا. میفهمم میفهمم. از آقابی سر را به مارگی پاکوتا. مرغی پاکوتا پا شما بیاین نوای. اک مرور سواری و با هم بیایند. درسی م... قاست که بعد نمیده میگه. شدی میگی. من یکی ما باهم یه هم ما با خودم میارم. من گفتم متشکرم سرهان. نخانوم شما شایدی ما جرایمن تا بعد بعد به هم کارانه مین جوری بگم کاملیات زود او ترپش بله صاحب کوم ببینم سره این وایش م... من با ون بیام بعد ایشون مثل گوغوش تو فیلمه اعتراضی عزیز... شب باشه سعید کنگر نشسته بود بشینه تاکه تو سر 하게 اولا من از اینجور جور فیلم های ما تزنی میبینم آقا بعدش هم اینا به شما رफ्टी نداره نا من که نا نمیتونم ناموس مردمو بفرستم بیاد لالنگه مش کردن کالوفکن بیخیالا من خودمو نیم کده ای ما شیتون آقای عزیز این چه طرز صحبت <تصفح> کردنه ایشون همونطور که گفتم ناموسی مرد و من سانین الان تو کمر کشی ما جرا ما موضوع هست شده است من نمیتونم سر نخست نیر را حکم نمیتون خب تو این ابران میکانیکو سبار کن من و خانم نازی با من میائیم خودمون دیگه من خودم هم بشم سرنگ گفتم تو وظایفی پلیست خالد نکن بارا تو وناقا. شما هم خواهرم با من تشریف بیاری بفرمایم ما که رفتیم تو بند ولی یادت با نگی طرف ببو گلابی بود نفهمیده بارا آقا جم بارا از این برافت طرف نازو خانم بفرمایم تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت نبودن فاجعه بودنت امنیت از کدو سرزمین تو از کدو هوایی که از قبیل من یه آسمون چدایی تو تکیه گاه من مثل تنت تو با تو هم سفر شدن منو با خودت ببر من به رفتن خانه هم هستنی هرچی که هست تو بخوایی من خانه